رب اعوذ بالله من به نام الله که بخشاگنده و با رحمت است آه، آه، آه، آه، آه. بدون شک اهل ایمان راستگار همان کسانی که متوازعانه نماز میگذارند و از بیودگوی به کسانی که زکات پرداخت میکنند و دامان خود را از آلودگی حفظ می نمایند، مگران که با همسرانشان و یا کنیزانشان هم بستر شوند که در این صورت مورد ملامت قرار نمیگیرند. و اگر کسی جز از این تریب دنبال راه دیگری برود، بیتردید تجاوزگر است، اهل ایمان کسانی هستند که هم نسبت به اماناتی که به آنها سپرده شده و هم به عهدی که بستهند وفادارند و آن را رعایت می نمایند همانها که به عبادتها اهمیت میدهند و آن را زنده نگاه می دارند. اینها وارسان حقیقی میراث الهی کسانی که بهشت به برین را عرص می برند و در جاودانه هستند به راستی انسان را از اصاره گل آفریدیم سپس او را به صورت نطفه‌ای در یک جای مطمئن رحم قرار دادیم آنگاه از نطفه لخته خون آفریدیم با آن لخته خون را به پار گوشتی بدل کردیم سپس اسکلتش را ساختیم و بر آن گوشت رویاندیم و سرانجام او را به شکل جدیدی درآوردیم. حقیقتا بزرگ است خدایی که بهترین خلق کنندگان است و بعد از همه این کارهای شگفت بالاخره همتان خواهید مرد و در روز قیامت دوباره زنده خواهید شد تا دستاورد اعمالتان را ببینید به راستی ما بر فراز شما هفت راه قرار دادیم و هرگز از مخلوقات قافل نیستیم از آسمان آبی به اندازه نازل کردیم و آن را در مخازنی در زمین نگه داشتیم حالانکه که بر نابود کردن آن توانایی، و به واسطه آن آب باغهایی از درختان نخل و انگور برایتان ایجاد کردیم که در آن میبه های بسیاریست و شما از آن میخورید و درختی در تور سینا میروید که روغنی میدهد و از آن روغن تعامی قابل خوردن می میگردد در وجود چهار پایان نیز برای شما عبرتی است از آن که در بد نشان است شما را سیراب می می‌کنید از گوشت آنها می‌خورید و از منافع دیگری که برای شما دارند بهره‌مند می‌شوید و هم بر آنها و هم بر کشتی‌ها سوار می‌شوید ما نو را به سوی قومش فرستادیم و به آنها گفت ای قوم من خدا را بپرستید که جز او هیچ خدایی و فریادرسی برای شما نیست چرا از عاقبت عمل پروا پروانه کنید. اشراف کافر قومش گفتند این نو کسی نیست جز بشری مثل شما با این حرفها میخواهد بر شما مسلط شود. اگر خدا میخواست پیامبری بفرستد حتما فرشتگانی را میفرستاد. فرستاد تابعا چون این چیزی حتی از نیاکان ما نشنیده نو فقط یک مرد جن زده است چند سواهی به او مهلت دهید شاید خوب شود و یا بمیرد نوه گفت هرورگارا حال که مرا تکثیب میکنند یاریم کن سرانجام به او وحی کردیم تا زیر نظر ما و با بهره گیری از وحی ما کشتی الهی را بسازد و هنگام که دستور ما صادر شد و آب از تنور جوشیدن گرفت به او گفتیم از هر حیوانی یک جفت و همراه خانبادت سوار کشتی کن تا نجات یابند البته به جز کسانی که قبلا وعده هلاکشان را داده ایم و دیگر در مورد این ظالمان با من سخن مگو که همه غرق شدنی هستند و انگامی که تو و همه کسانی که با تو هستند بر کشتی سوار شدید بگو الحمدلله که ما را از دست قوم ظالمان نجات داد و بگو پروردگارا، مرا در جایی امن و با برکت فرودار. زیرا تو بهترین راهبرانی. قطعا در همه اینها عبرت هاییست است و ما فقط مورد آزمایش بوده‌ای. آنگاه بعد از آنها مردمی دیگر بیافریدیم و به سوی آنها نیز پیامبری فرستادیم تا بگوید خدا را بپرستید که هیچ خدایی و فریادرسی جز او برای شما نیست. چرا از عاقبت عمل کردتان پروانه نمی کنید؟ و اشراف قومش هایی که حقایق را انکار می کردند و دیدار آخرت را تکسید می نمودند و در این دنیا ایش و نعمتشان داده بودیم گفتند این مرد چیزی نیست مگر بشری مثل شما هر چی شما میخورید او هم می‌خورد و هر چی می‌آشامید او نیز می‌آشامد اگر بشری مثل خودتان را اطاعت کنید بی تردید زیان کردید آیا به شما وعده میدهد وقتی مردید و تبدیل به مشکی خاک و استخوان شدید دوباره شما را زنده از قبر بیرون می‌آورند هایی که به شما می‌دهند بعید است بعید زندگی دنیا چیزی نیست مگر همین که می‌بینید غیر از این چیز دیگری نیست ادهی می و ادهی به دنیا می مسلما هیچ کدام من دوباره زنده نخواهیم شد. این شخص مردی است که بر خدا دروغ می و ما او را باور نداریم. گفت فروردگارا حال که مرا تکزیب کردند یاریم کن. خدا گفت به زودی از اندیشه و عملکردشان پشیمان خواهند شد. سرانجام سیهی مرگ بار و به حق آنها را فرا گرفت و همشان را چون گیاهی خوشگیده نمودیم رحمت الهی از جماعت ظلم پیش دور باد باز بعد از آنها مردمانی دیگر آفریدیم وقتی زمان مرگ فرارسد هیچ امتی نبر عجل خود سبت گیرد و نه لحظه تأخیر کند سپس پیانبران من را پی در پی فرستادیم اما هرگاه پیامبری به سوی امتی آمد تکزیبش کردند و ما نیز این امتها را یکی پس از دیگری به دیار حلاکت فرستادیم تا فقط داستان ماجرایشان را بر سر زبانها جاری کنیم از رحمت الهی دور باد قومی که حقایق را باور نمی کنند پس موسا و برادرش هارون را با معجزات و دلائل روشن فرستادیم آن هم به سوی فرعون و درباریانش که همه نسبت به حق متکبر بودند و خود را برتر می پنداشتند گفتند آیا می به دو بشری که مثل ما هستند و قوم و قبیلهشان همگی بنده ما بودند ایمان بیاورید سرانجام موسی و هارون را تکذیب کردند و در نتیجه همه هلاک شدند در حالی که ما به موسی کتاب دادیم امیدان که به راه نجات هدایت شدند وجود عیسی و مادرش را آیه و ای قرار دادیم و آنها را در قلم رو بلند امنی گذاشتیم که آبی جاری داشت ای پیامبران از نعمتهای پاکیزه خداوند بخورید و اعمال نیک و شایسته انجام دهید و بدانید که من از عمل شما آگاهم در حقیقت این دین شما دین واحد است و من پروردگار شما هستم پس فقط از من داشته باشید اما سرانجام دین خود را فرقه فرقه کردند و هر فرقی به آنچه دارد دلخوش گشته پس آنها را چندی در جهل و گمراهیشان رها کن تا یا مرگشان پرارسد و یا دچار عذاب الهی گردند. آیا میپندارند آن مال و فرزندانی که به آنها دادیم برای این است که تلاش میکنیم به آنها خیر و برکت برسانیم؟ واقعاً آنها حقایق را درک نمی کنند. بدانید آنها که از خوف پروردگارشان بیمناکند و آنها که بآیات نجات بخش پروردگارشان ایمان دارند و کسانی که به پروردگارشان شرک نمی ورزند والذین یقتلون ما آتاهم وقلوبهم وجلفت انهم الى ربهم راجعون فی الخیرات و هم و آنها که پرداختنی ها را پرداخت می کنند و با وجود این باز از این که به سوگ پروردگارشان لحظه پارند قلبهایشان در هراس است. همه اینها کسانی هستند که در انجام نیکی ها شتاب می کنند و از دیگران پیشی می گیرند. ما هیچ کس را بیش از طاقتش تکلیف نکردید زیرا نزد ما کتابی است که بر اساس حق سخن میگوید و تقدیر میکند به قطعا بر آنها ستم نخواهد رفت دلهای مخالفان از نتیجه اعمالشان در بی است غیر از این کارها عملکرد دیگری نیز دارند که پیوسته مرتکب میشوند و ما از آن آگاهیم هنگامی که مرفهین آنها را دوچار عذاب کنیم آنگاه همشان استراسه کرده ناله سر ناله و فریاد نکنید که امروز از سوی ما هیچ کمکی به شما نخواهد رسید. در دنیا آیات نجات بخش من بر شما خوانده میشد، اما شما از آن روی برمیگرداندید و به عقب باز می گشتید. نسبت به آن تکبر میورزیدید و در هایتان به بدگویی پرداختید. چرا آنها در این آیات تدبر نمی کنند شاید مطالبی انحساری به آنها رسیده که به نیاکانشان نرسیده است و شاید هم پیانبرشان را نشناخته این کار می کنند و شاید هم می گویند او دیوانه است نه، بطعاً او حق را به آنها رسانده اما اکثرشان از حق کراهت دارند اگر قرار بود که حق از پیه حوث های آنها برود تا کنون سراپاق آسمان ها و زمین و هر که را در آنهاست فساد و تباهی فرا گرفته بود ما فقط اندرزشان داده اما آنها از این و اندرز هم روی گرداندند شاید هم تو از آنها مزدی می اما میدانی که مزد پروردگارت بهتر از هر مزد دیگری است و او بهترین روزی دهندگان است یعرین تو آنها را در درانه امور به راه راست و درست دعوت میکن به راستی کسانی که به آخرت ایمان نمیآورند از راه درست و نجات بخش انحراف یافتند برخی، چنان نجوجند، اگر با آنها رحم کنیم و مصیبتی را که دامنگیرشان شده برطرف کنیم، باز سرسختانه در کفر و سرگشته و حیران باقی میمانند. ما آنها را گرفتار عذاب الهی کردیم، زیرا هیچ توازع و فروتنی نسبت به پروردگارشان ندارند و به درگاهش تذرع و زاری نمی کنند. وقتی در واضع عذاب سخت را بر روی آنها بگشایم دیگر از همه جا ناامید می‌گردند. او کسی است که برایتان شنوایی، بینایی و دل پدید آورد اما چه اندک و کم ارزش است شغل او کسی است که شما را در زمین آفرید با این وجود به سویش جان خواهید شد. او کسی است که، زنده می کنند و می میمیرانند حتی گردش شب و روز به خاطر اوست چرا تعقل نمی کنید نه آنها هم همان اباطیلی را میگویند که پیشینیانشان میگفتند گفتند آیا هنگامی که مردیم و تبدیل به مشکی خاک و استخوان شدیم دوباره زنده خواهیم شد پیش از این نیز به ما و پدرانمان چنین وعده هایی دادند این حرف ها فقط فقط افسانهای پیشینیان است بگو پس این زمین و موجودات روی آن متعلق به کیست از کجا آمده است اگر بگویید به زودی خواهند گفت از آن خداست بگو آیا اکنون پند نمی گیرید؟ بگو چه کسی پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش عظیم است به زودی خواهند گفت از آن خداست بگو چرا حرمت نگاه نمی دارید بگو ملکوت و تقدیرات هر موجودی به دست کیست و چه کسی است که به دیگران پناه می دهد اما خود به پناه کسی نیاز ندارد اگر می بگویید به زودی خواهند گفت از آن خداست بگو به کدامین سو جادو شده اید؟ نه ما حق را تقدیم آنها کردیم اما آنها به دروغ انکارش میکنند. خداوند هیچ فرزندی اختیار نکرده و هیچ خدایی با او همکاری ندارد. اگر چون این بود، هر خدایی با مخلوقات خریش به سوی میرفت و بعضی بر بعضی دیگر سلطجوی میکردند. منذه است خدا از آنچه که توصیف میکنند. او، خدای دانای نادیده ها و دیده ها است و از هرچه شریکش قلم داد می کنند برتر و بلند مرتبه تر است. بگو پروردگارا هرگاه عذابی را که به آنها وعده دادهی بر من بنمایی. پروردگارا مرا از آن قوم ظالم قرار مده. ما اگر بخواهیم چرا با آنها وعده دادهیم به تو دهیم می توانیم. هی احسن يصفون. تو بدی را با نیکی از میان بردار ما خودمان نسبت به آنچه چه وصف می و بگو پروردگارا از وسوسه های شیاطین به تو پناه میبرم. نه تنها از وسوسه هایشان بلکه هنگامی که خودشان هم حاضر شوند باز به تو پناه میبرم. هنگامی که یکی از آنها بمیرد گوگد پروردگارا مرا دوباره به دنیا باز گردان. امید آنکه این بار اعمال خوب و شایسته ای را که ترک گفته بودم انجام دهم. به او گفته شود هرگز این سخنی است که او میگوگد و مورد پذیرش نیست و پشت سرشان برزخی است تا روزی که، برانگیخته شوند هنگامی که در سور دمیده شود دیگر در آن روز هیچ خویشاوندی بین آنها وجود نخواهد داشت و از حال یک نپرسند پس هر کس میزان عمل کرده خوبش سنگین باشد بیشک از رهستگاران است و آنها که میزان عمل کردشان سبک و ارزش است کسانی هستند که به خود زیان رسندند آنها در جهنم جاودانه خواهند بود آتش چهره را میسوزاند در حالی که معیوس و ناخشنودند آیا آیات نجات بخش من بر شما خوانده نمیشد و شما هم تکذیبشان میکردید؟ کردید؟ گویند پروردگارا شقاوت و بدبختی بر ما غلبه کرده بود و اعتراف میکنیم همه ما گمراه بوده پروردگارا ما را از این آتش خارج کن اگر یک بار دیگر به کفر و باطل برگردیم قطعا ستمکار خواهیم بود خدا گوید به خاطر دستاوردتان به اعماق دوزخ روید و با من حرف مزنید یادتان می آید هنگامی که در دنیا گروهی از بندگان من می گفتند پروردگارا ما به حقایق ایمان آورده ایم پس از ما درگذر و رحم آورد که تو بهترین رنگ کنندگانی اما شما آنها را مسخره می کردید و پرداختن به آنها باعث شد تا یاد مرا فراموش کنید و همواره به آنها می خندیدید ولی امروز کسانی را که به آنها می خندیدید به پاس صبر و استقامتی که در راه خدا داشتند پاداششان می و قطعاً آنها پیروز و رستگارند خدا گوید چند سال در روی زمین زندگی کرده اید؟ گویند یک روز و یا کمتر. از کسانی که حوش و عواز شمردن دارند سال فرما خدا گوید جز اندکی در دنیا نبوده اید البته اگر بتوانید درک کنید آیا پنداشتید که ما شما را بیروده کرده کردیم؟ و هیچگاه به سود ما باز نمی گردید؟ بلند مرتبه است خدایی که فرمان روایی حق است هیچ معبودی جزو نیست و پروردگار عرش کریم است هرکس با الله خدای دیگر را بخاند نسبت به ادعایش هیچ برهانی ندارد و حساب اعتقاد و عمل کردش نزد پروردگارش موجود است و خدا کافران را راستگار نمی کند و بگو پروردگارا مرا بیا مرد. و بر من رحم کن که تو بهترین رحم کنندگانی و رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمی صدق الله العلی العظیم راست گرد خداوند بلند مرتبه بود از این